باقی مطلب رو از زبان استاد توس پشنبیم همان مادرم دخت مهراب بود به دو کشور هند شاداب بود که زهاک بودیش پنجم پدر ز شاهان گیتی براورد سر نژادی از این نامورتر کراست است گردن نپیشد زراست دگر آنکه اندر جهان سر به سر یلان راز من جست باید هنن همان عهد کابوس دارم نخوست که بر من بهانه نیارند جست همان عهد کیخسرو دادگر که چون او نبست از کیان کس کمر زمین را سراسر همه گشته ام هم بسی شاه بیداد گر کشتم چون من برگذشتم ز جیهون براب ز توران به چین آمد افراسیاب ز کابوس در جنگ هاماوران به تنها برفتم به مازندران نه ارجنگ مندم نه دیو سپید نه سنجه نه اولاد غندی نه بید اینا اسم دیوان مازندرانه همی از پی شاه فرزند را بکشتم دلیر و خردمند را که گردی چو سهراب هرگز نبود به زور و به مردی و رزم آزمود ز پانست همانا فزون از سال که تا من جدا گشتم از پشت زال همی پهلوان بودم در جهان یکی بود با آشکارم نهان به سان فریدون نژاد که تاج بزرگی به سر برنهاد ز در آورد زهاک را سپردان سر و تاج او خاک را دگر سام کو بود مارا نیا ببرد از جهان دانش و کیمیا سه دیگر که چون من ببستم کمر تناسان شدند در جهان تاج بر کمر بستن معنی آماده شدن برای کاری میگه از وقتی که من کمر بستم به پهلوانی پادشاهان دیگه راحت شدند قرارن که دیگه هیچ گونه غم و نداشتن و جوابگوی دشمنانشون من بودم سه دیگر که چون من ببستم کمر تناسان شدند در جهان تاج بدان بر روز هرگز نبود پی مرد بیراه بر دز نبود که من بودم من در جهان کامران مرا بود شمشیر و گرز گران بدان گفتم این تا بدانی ای همه تو شاهی و گردنکشان چون رمه تو هم در زمانه رسیده نوی اگر چند با فرکه خسروی تنخیش مینی همی در جهان نه ای آگه از کارهای نهان چو بسیار شد گفتها می خوریم به می جان اندیشه را بشکریم می که حرفاشونو رو بعد که حرفت شد میگه خب حالا یه حرفا رو بگذاریم کنار یه قدری می بخوریم اما خب حرفا ادامه داره دوباره اسفندیار شروع میکنه به بیان کردن افتخارات خاندان و نیاکان خودش چون از رستم اسفندیار این شنید بخندید دو شادان دلش بردمید به دو گفت از این رنج و کردار تو شنیدم همه درد و تیمار تو تو کارهایی که کردی من شنیدم حالا تو هم کارهای منو گوش کن کنون کارهایی که من کرده ام زگردن کشان سر براورده ام نخستین کمر بستم از بحر دین توهی کردم از پرستان زمین کس از جنگ جویان گیتی ندید که از کشتگان خاک شد ناپدید نژاد من از تخم گشتاس است که گشتاسب از تخم لحراسب پس، که لحراسب بود پور اورند شاه. که او را بودی از مهان تاج و گاه هم اورند از گوهر کیپشین که کردی پدر بر پشین آفرین پشین بود از تخمه کیقوباد خردمند شاهی دلش پرزداد همین رو چنین تا فریدون شاه که شاه جهان بود و زیبای گاه همان مادرم دختر قیصر است کجا بر سر رومیان افسر است همان قیصر از سلم دارد نجات ز تخم فریدون با فروداد، بگویم منو کس نگوید که نیست که بیراه بسیار و ره است. تو آنی که پیش نیاکان من بزرگان بیدار و پاکان من پرستنده بودی همی بانیا نجویم همی زین سخن کیمیا میگه من این که میگم که تو خدمتگزار نیاکان من بودی، محسودم عیب جستن تو نیست. بزرگیز شاهان من یافتی، چو در بندگی تیز بشتافتی. تو را بازگویم همه هرچه هست، یکی گر دروغ است بن مائده است که تا شاه گشتاس را داد تخت، میان بسته دارم به مردی و بخت، هر کس گرفت از پی دین به چین بکردند زان پس بر او آفرین. از آن پس که ما را به گفت گرزم ببستم پدر دور کردم ز بزم و از بند من بد رسید شد از ترک روی زمین ناپدید بیاورد جاماس آهنگران که ما را گشاید ز بند گران همان کار آهنگران دیر بود مرا دل بر آهنگ شمشیر بود دلم تنگ شد بانگشان بر تن از دست آهنگران بستدم. بار افتراختم سرز جای نشست قلوبند بر هم شکستم به دست گریزون شد در جاست از پیش من برانسان یکی نامدار انجمن به مردی ببستم کمر بر میان همی رفتم از پس شیر جیان شنیدی که در هفت خان پیش من چه آمد از شیران و از اهرمن به چاره بروینده زندر شدم جهانی بر بر هم زدم بجستم همه کین ایرانیان به خون بزرگان ببستم میان. به توران و چین آنچه من کرده ام همان رنج و سختی که من برده ام همانا ندیده است گور از پلنگ نه از شست ملاه کام نهنگ. زهنگام تور و فریدون گرد کسن در جهان نام این دژ نبرد یکی تیر دش بر سر کوه بود که از برتری دور از انبوه بود. چو رفتم همه بود پرستان بودند سراسیمه برسان مستان بودند به مردی مران باره را بستدم، بوتان را همه بر زمین بر زدم و دنبالش باز همین سخنها رو میگه بازم بعد از اینکه حرفش تموم شد میگوید که سخنها به ما برکنون شد دراز اگر تشنهای جام می را فراز او هم میگه بله خیلی حرف زدیم حالا می بخوریم اما رستم باز مطلب رو بی جواب نمیگذاره به همدیگه دارن فخر میفروشن و یاد افتخارات خودشون و نیاکانشون می رو میکنن رو هم چنین گفرستن به استندیار که کردار ماند یادگار کنون داد ده باش و بشنو سخن از این نامبردار بردار مرد کهن اگر من نرفتی به مازندران به گردن براورد گرز گران؟ کجا بسته بود گیب و کابوس و توست شده گوش کر یک سر از بانگ کوس که کندی دل و مغز به سپید که دارد به بازوی خیشین امید سر جادوان را بکندم زتن ستودان ندیدند و گور و کفن اینجا ستودان معنی دخمه است که معمولا زردشتی و ایرانیان قدیم جسدها رو در اونجا می‌گذاشتن سر جادوان را بکندم زتن ستودان ندیدند و گور و کفن زبند گران بردم از روگ تخت شد ایران به دو شاد و اونیک بخت مرا یار در هفت خان رخش بود که شمشیر تیزم جهان بخش بود و از آن پس که شد سوی هآماوران ببستند پایش به بند گران ببردم ز ایرانیان لشکری به جایی که بود مهتری گرسری یعنی مهتری یا سری بکشتم به جنگ شاهشان توهی کردم و نامورگاهشان جهاندار کاووسکی بسته بود زرنجوز تیمار دلخسته بود بیاوردم از بند کابوس را، همون گیب و گودرز و هم توس را به ایران بود افراسیاب آن زمان، جهان پر ز درد از بد بدگمان به ایران کشیدم ز آوران، خود و شاه با لشکری بیکران شب تیره تنها برفتم ز پیش، همه نام جستم، نه آرام خیش چه دیدان درفشان درفش مرا، به گوش آمدشت بانگ رخش مرا بپردخت ایرانو میگه به محض اینکه صدای رخش منو شنید و درفش منو دید ایرانو تخلیه کرد افراسیاب افراسیاب به اون گردن کشی بپردخت ایرانو شد سوی چین جهان شد پر از داد و پر آفرین گر از یال کابوس خون آمدی ز پشتش سیابوش چون آمدی یال به معنی گردنه میگه اگر گرد از گردن کاووس خون می آمد. یعنی اگر او رو از بین می بردن چطور ممکن بود که سیاوش پیدا بشه وزو شاه که خسرو پاک و راد که لحراس را تاج بر نهاد میگه من کابوس آوردم کابوس سهی سالم آوردم در نتیجه سیاوش تونست به دنیا بیاد از سیاوش که خسرو پدید آمد که خسرو تاج شاهی رو سر لحراس بنابراین در حقیقت بخشنده تاج به لهراس من هستم که نگذاشتم کابوس از بین بره. اینجا یک گوشه کوچک از اختلافاتی رو که هنگام تعیین لهراس به سمت پادشاهی ایران از طرف کیخوس رو صورت گرفته رستم در ضمن شهر افتخارات خودش میگه. و مخالفت شدیدی که زال در اونجا کرده بیان میکنه من این بیت کیخسرو ای رو قبلا میخونم برای اینکه داره به این مطلب گر از یال کابوس خون آمدی ز پشتش سیاووش چون آمدی و زو شاه کیخسرو پاک و راد که لوهراس را تاج بر سر نهاد پدرم آن دلیر گرانماوی مرد در آن انجمن خاک قرد که لهراسپ را شاه بایست خواند از او در جهان نام چندین نماند میگه پدر من در اون انجمن ی گفت خاک بر دهن من که لهراسم رو به نام پادشاه بخواند. نشان مخالفت بسیار شدیده و همین اختلافات که عرض کردم بوده چنازی بدین تاج گشتاسپی، بدین تازه آین راسپی، بی این بیت جاویدان اینجا آمده که همه ایرانی ها باید ظاهرن از بر دارن بدین تاج گشتاسپی، بدین تازه آیین لحراسپی که گوید برو دست رستن من نبندت مرا دست، چرخ بلند که گر چرخ گوید مراکی نیوش به گرزه گرانش بمالم دو گوش من از کودکی تا شدستم کهن گونه از کس نبردم سخن مرا خاری از پوزش و خواهش است و از این نرم گفتن مرا کاهش است میگه من دارم قدر خودم رو میشکنم دارم خودم رو خار میکنم که اینجوری با تو حرف میزنم کی به تو گفته بیه دست منه ببندی ده تیزیش خندان شد اسفندیار بی آزید و دستش گرفت اینجا اینجای سحنه است که نمونه هم باز در شاهنامه و یکی از راه های زوراوری و نشون دادن نیرو به طرفه دوتا پهلوان که به هم می و میخواستند هر کدوم مایه و زور و نیروی خودشو به دیگری نشون بده میگرفتند دست طرف و فشار می ده. طبیعیست که در این سحنه همیشه اون پهلوانی که برتره و دست بالا رو داره وقتی که دست طرف فشار ده اون طرف بیشتر دوچار زخم و ناراحتی میشه عین این بازی رو در مجلس بعض اسفندیار دست رستم فشار میده صحنه رو توجه بفرمایید میبینید که همینجا هم فردوسی نشون میده برتری، با با همه نیرومندی استندیار زه تیزیش خندان شد اسفندیار بیازید و دستش گرفت دستوار به دو گفت که ای پیلتن چنانی که بشنیدم از انجمن ستب رست بازود چون ران شیر برایال چون اجده دلیر میان تنگ و باریک همچون پلنگ به ویژه کجا گرز گیرد به چنگ بی چنگش میان سخند ز برنا خندید مرد کهن ز ناخون آب زرد همانو نجنبید، درد مرد گرفتان زمان دست مهتر به دست حالا رستم دست اسفندیار میکنم گرفتان زمان دست مهتر به دست چنین گفت که شاهی از دان پرست است شاه گشتاس آن نامدار کجا پوردارد چو اسفندیار خنک آن که چون تو پسر زایدو همی فر گیتی بی و همی گفت و چنگش به چنگ همی داشت تا چهره او شد تو خون همان ناخنش پرز خوناب کرد سپهبد بر اوها پر از تاب کرد نشون میده که ضعیفتر تر اسفندیار بخندید از او فرخ اسفندیار چنین گفت که ای رستم نامدار تو امروز میخورد که فردا به رزم بپیچی و یادت نیاید ز بس چون من زین زرین هم بر سیاه به سر هم خسروانی کلاه به نیزه ز است نه هم بر زمین از آن پس نه پرخاش جویی نکین دو دستت ببندم برم نزد شاه بگویم که من زون ندیدم گناه بباشیم پیشش به خواهشگری بسازیم هر گونه داوری رهانم تو را از غم و درد و رنج بیا بی پس از رنج خوبی و گنج میگه که میگیرم تو میبرم تو بعدم شفاعت تو میکنم و بعد بعض توب میشه بخندید ز اسفندیار بدو گفت سیرایی از کارزار کجا دیده ای رزم جنگ آوران؟ کجا یافتی باد گرز گران اگر جز بر این روی گردد سپهر به پوشت میان دوتن روی مهر به جای می سرخ کیناوریم کمند نبرد و کمیناوریم قوه کوس خواهیم از آوای رود به تیغ و به گوپال باشد درود ببینی تو ای فر رو گراییدن و گردش کار چو فردا ببینی به دشت نبرد به آورد مردن در به مرد زباره به آغوش بردارممت میدان به نزدیک ز آرمد. بر نام بر تخت آج نه هم بر سرت بر دلفروز تاج کجای یافتستم من از کیق و باد؟ به مینو همی او باد شاد. گشایم در گنج و هر خواسته نه هم پیش تو یکسر آراسته. ده هم بینیازی سپاه تو را به چرخنده آرم کلاه تو را از آن پس بیایم به نزدیک شاه گرازان و خندان و خرم به راه به مردی تو را تاج بر سر نهم سپاسی به گشتاس زین بر نهم از آن پس ببندم کمر بر چنان چنانچون ببستم به پیش کیان ترتیب بعدهایی که این دو نفر به هم میدن باز ملاحظه بفرمیدن اونجا که من با نیزه تو از اسب میارم روی زمین دستت تو میبندم و بعد برد میدارم میبرم پیش شاه اونجا شفاعت میکنم رستم میگه اگه قرار جنگ باشه و اگر به جای میه سرخ سراغ کین بریم ما وقتی که مرد با مرد روبرو شد زباره به آغوش بردارمت من بغلت میکنم تو رو از روی اسب برد میدارم به نزدیک زال آرامن اونجا که آوردم تو رو میشنم به تخت تاجی رو که کیقوبات به من داده بر سرت میگذارم سپاه رو گنج و خواسته بهشون میدم و بعد با هم بلند میشیم میریم پیش شاه ببینید رفتاری که هر کدوم در نظر دارن با طرفشون بکنن چقدر با هم دیگه فرق داره. ولی خب اینا همه از مقموله است که آمه ناس بهشون میگن گردگیری در حقیقت اینا دارن با هم گردگیری میکنن هنوز نزاع به صورت لفظی است ولی قلیزتر میشه این ماده دستای هم فشار دادن و زورشون به هم نشون میدن و کم کم داره به رو در روی میکشی چنین پاسخ آوردش اسفندیار که گفتار بیشی نیاید به کار شکم گرسنه روز نیمی گذشت ز گفتار بیگار بسیار گشت بیارید چیزی که دارید خان کسی را که بسیار گویید مخان اسفندیار میگه که شدیم میگه حالا غذا رو بیارید و دعوت میکنه رستم رو سر غذا و رستم میاد سر سفره چون رستن رستم به خوردن گرفت بموندن در آن خوردن اندر شگفت یل اسفندیار و جوان یکسره زهر سونه دان پیشش بره بفرمود مهتر که جام آورند به جای مه پخته خام آورند این مسئله مه پخته و خام داستان مفصلی داره که بنده اینجا فرصت عرض کردنش ندارم ولی تصور میکردند که اگر آب انگور رو بجوشانند و بعد تخمیرش کنند شرابی به دست میاد که در مذهب ابو حلاله او رو بهش می گفتن مه پخته و پخته عقیده داشتم قدیم که می پخته اثرش کمتر از می خامه این است که اینجا حکیم می فرماید گفت به جای می پخته می خام بیارم. ببینیم تا رستم اکنون ز می چه گوید چه آورد ز کابوس کی بیاورد یک جام می می گسار که کشتی بکردی بروبر گذار این از مقوله اقراق شاعران است میگه این جام به قدری بزرگ بود که کشتی میتونست توش راه بره به یاد رستم بخرد برآورد از آن چشمه زرد گرد میگه رستم لاجرعه جام رو بر سر کشید و خالی کردش چشمه زرد کنایه از جام شرابی که شراب زرد ظاهرا توش بوده همون جام را کودک میگسار بیاورد پر باده شاهوار چنین گفت پس با پشوتن براز که بر می نیاید به آبت نیاز جام رو میاره به دیگران میخواد می بده میاد پلوی پشوتن برادر اسپندیار و اونجا ظاهرا این میخواد که قدری آب در می بریزه چنین گفت پس با پشوتن به راز که بر می نیاید به آبت نیاز چرا آب بر جام می بفکنی که تیزی نبیده کهن بشکنی پشودن چنین گفت با میگسار که بی آب جامی میافکن بیار می آورد و رامشگران را بخوان زرستم همی در شگفتی بماند چون هنگامه رفتن آمد فراز می لعل شد رستم سرفراز چنین گفت وا او یا که شادان بدی یعنی شادان بادی چنین گفت با او یا لسفندیار که شادان بدی تاب و بد روزگار می و هرچه خوردی تو را نوش باد روان دلاور پر از توش باد بدو گفت رستم که ای دار همیشه خرد و عادت آموزگار هران می که با تو خورم نوش گشت روان خردمند را توش گشت گر این کینه از مغز بیرون کنی بزرگی و دانش برفزون کنی ز دشتندر آویی سوی خان من با ویشاد یک چند مهمان من سخن هرچه گفتم به جای آبرم خرد پیش تو رهنمای آورم بی آسای چندی یو با بد مکوش سوی مردمی یا و بازار هوش. ولی اسنجار قبول نمیکنه. چنین گفت با اوی اسفندیار که تخمی که هرگز نروید مکار تو فردا ببینیز مردان هنر چون من تاختن را ببندم کمر تنخیش را نیز هیچ به ایوان شو و کار فردا بسیج ببینی که من در صف کارزار چنانم چو با باده و میگسار شهر زاول به ایران شدم به نزدیک شاه و دل ایران شدم هنر بیش بینیزه گفتار من مجوین در این کار تیمار من رستم خیلی نگران و ناراحته در این باغ و باز یکی از گره های بسیار مهم داستان در اینجا پیش میاد.